<sweak> . نام خداوند جان و خرد سلام شب شما بخیر و شادکامی افسانه ها به دوران کودکی بشر تعلق دارند برای همین هم که کودکان امروز از شنیدن اون لذت میبرن خدمت افسانه ها حتی به پیش از این دوران برمیگرده به این معنا که از وقتی انسان به دنیا میاد افسانهها هم متولد میشن و طی زندگی با اون همراهند و به همین خاطر افسانهها به گروه سنی خاصی تعلق ندارند و همه افراد براحتی با اون ارتباط برقرار میکنن و ما افسانه این هفته ما یک افسانه ایرانی از مردمان ترکمن به نام سکی تلا برگرفته از کتاب چهل دروغ روزی روزگاری در زمانهای خیلی دور پیرمردی بود که زندگیش رو از راه تجارت میگذرموند. آقبت روزی رسید که پیرمرد احساس کرد که دیگه توان و قدرت تجارت رو نداره و حسابی پیر شده. برای همین هم در یکی از روزها تنها پسرش رو که اسمش عزیز بود صدا زد و گفت من دیگه پیر شدم پسرم. و دیگه توان کار کردن ندارم تو تو باید به جای من تجارت کنی عزیز با لحن حیجان آمیزی گفت من؟ چشم چشم من آمدن پدر پیرمرد گفت پسرم برای شروع کارت این صد سکه طلا رو بگیر و همراه با کاروان حرکت کن و با فروش این سکه ها از شهر فلفل سیاه بیار میونی که مردم اینجا به فلفل سیاه خیلی علاقه دارن عزیز سریع به علامت تصدیق تکون داد و کیسگ طلاها رو از پدرش گرفت و رفت تا خودش رو برای سفری دور و دراز آماده کنه صبح خیلی زود عزیز به همراه کاروان به طرف شهر به افتاد چند روز بعد اونا به شهر رسیدن عزیز همونطوری که مشغول گشتن بود یه دفعه چشمش به مردی افتاد که در گوشه نشسته بود و دوتار می نواخد ادی هم دور اون جمع شده بودن عزیز خودش رو به اون جمعیت رسوند و در میون اونها ایستاد و به صدای زیبای دوتار مرد نوازنده داد عزیز چنان شیفته یه صدای ساز دوتار و هنر نوازندگی مرد شده بود که پاکی یادش رفت برای چی به شهر اومده. کم کم عده ای که در دوربر مرد نوازنده جمع شده بودن خسته شدن و از اونجا دور شدن. عزیز به مرد نوازنده نزدیک شد و گفت سلام خسته نباشی. صدای سازت آدم و میکنه؟ می مرد نوازنده لبخندی زد و جواب داد سلامت باشی پسر جون عزیز گفت حاضری در هفت روز نواختن دوتار رو به من یاد بدی در عوض هرچی بخوای به تو میدم نوازنده گفت البته که حاضرم ولی ولی هفت روز برای یادگیری دوتار خیلی کمه عزیز گفت ولی من بیشتر از روز نمیتونم توی این شهر بمونم باید هرچه زودتر به شهر خودم برگردم مرد نوازنده فکری کرد و گفت آه باشه قبوله ولی باید در عوض صد سکه طلا به من بدی آخه من باید خیلی زحمت بکشم تا در این مدت کم به تو دوتار زدن یاد بدم عزیز قبول کرد و سکه طلایی رو که برای خرید فلفل سیاه به همراه آورده بود به مرد نوازنده داد و مرد نوازندم در عرض یک هفته تمام فوتفن دوتار نوازی رو به عزیز یاد داد و عزیز به همراه کاروان به شهر خودش نزد پدر پیر مرد تاجر وقتی که پسرش رو دست خالی دید خیلی تعجب کرد و وقتی علتش رو پرسید عزیز با شرمندگی جواب داد پدر من شرمندم وقتی توی شهر برای خرید فلفل سیاه می گشتم، با مرد نوازندهای برخورد کردم که صدای دوتارش آدم رو جادو می کرد نمیدونی چه صدای دلنوازی داشت از اون مرد نوازنده خواستم که در مقابل صد سکه طلا به من نواختن ساز دوتار رو یاد بده اونم نواختن دوتار رو به من یاد داد حالا من شرمندم بدجم پیرمرد لبخندی زد و گفت ای بی نداره پسرم از قدیم گفتن هنرمند اگه به ثروتی نرسه گرسنم نمیمونه حالا برو و سازت رو بیار تا ببینم این صدایی که اینقدر ازش تعریف میکنی واقعا دلنوازه یا نه عزیز با خوشحالی رفت و دوتارش رو آورد و در مقابل پدرش شروع به نواختن کرد چند روز بعد پیرمرد باز هم صد سکه طلا به پسرش داد و گفت پسرم این صد سکه طلا رو بگیر و با کاروان به تجارت برو عزیز سکه رو گرفت و بار دیگه با کاروان راهی شهر شد بعد از چند روز کاروان به شهر رسید و عزیز برای خرید به بازار رفت اون همونطوری که در حال قدم زدن بود به مسجدی رسید که از داخل اون صدای ادهی به گوش می رسید که در حال سواد بودند بودن. عزیز یه کمی ایستاد و به صدای اونها گوش سپرد و بعد تصمیم گرفت وارد مسجد بشه و از مرد مکتب دار بخواد که به اون هم سواد خوندن و نوشتن یاد بده. وقتی عزیز وارد مسجد شد همه صدا افتادن و با تعجب به عزیز که برای اونها غریبه بود چشم دوختن عزیز گفت سلام خسته نباشین ببخشید ببخشید ببخشید مزاحم سوادآموزی شما شدم من اومدم تا در مقابل 100 سکه طلا سواد خوندن و نوشتن رو یاد بگیرم مرد مکتبدار نگاهی به پسر انداخت و گفت که میخوای سواد خوندن و نوشتن یاد بگیری ها عزیز با خوشحالی و هیجان جواب داد البته البته به بعد کیسه های سکه طلا رو روی میز کوچیک مرد مکتبدار گذاشت و قرار شد در عرض یه هفته سواد خوندن و نوشتن رو یاد بگیری پسر افسانه ای ما که همون عزیز باشه بعد از یک هفته در حالی که خوندن و نوشتن رو آموخته بود به شهر خودشون برگشت و باز هم به پدرش گفت پدر من بازم شرمندم من ست سکه طلا رو خرج سواد آموزی کردم و سواد شدم پدر عزیز مکسی کرد و گفت هیچ عیبی نداره پسرم سوادم چیز خوبیه روزی به دردت میخوره و چند روز بعد باز هم پیر مرد به پسرش صد سکه یه تلا داد و اونو روانه شهر کرد تا فلفل سیاه بخره و به شهرش برگرده پسر که داشت این دفعه هر طوری شده سکه های تلا رو خرج تجارت فلفل سیاه کنه یه راست به طرف دکون فلفل فروشی رفت اما دکون بسته بود پسر ساعتی رو توی شهر به گشت و گذار پرداخت تا اینکه به میدان بزرگ شهر رسید و در اونجا مردی رو دید که مشغول بازی شطرنج بود. پسر لحظه‌ای ایستاد و به حرکات بازی مرد خیره موند و چون از بازی شطرنج خوشش اومده بود به مرد شطرنج باز نزدیک شد و گفت: سلام. من از این بازی خیلی خوشم اومده. میشه میشه اونو به من یاد بدی؟ در عوض منم صد یه طلا به تو میدم مرد شطرنج باز با شنیدن این حرف گل از گلش شکفت و با خوشحالی گفت البته که یادت میدم از همین حالا شروع می کنیم. و فورا دست به کار شد و بازی شطرنج رو به پسر افثانی ما یاد داد این بار هم پسر با دست خالی به شهر خودش برگشت. پیرمرد که باز هم پسرش رو دست خالی دید، لبخندی زد و گفت: این بار دیگه چرا دست خالی برگشتی ها؟ پسر هم در حالی که سرش رو از خجالت پایین انداخته بود، گفت: پدر، شرمندم رفتم دکون فلفل فروشی ولی بسته بود. در شرک میگشتم به مردی برخورد کردم که در بازی شطرنج استاد بود و ماهر از اون خواستم در عوض صد سکه یه طلا شطرنج رو به من یاد بده و اینجوری بود که سکه های طلا رو از دست دادم ولی ولی در عوض شطرنج باز خوبی شدم. پیرمرد سری تکون داده گفت. عیبی نداره پسر جون روزی شطرنج به دردت می خوره. پسر که از برخورد مهربانانهی پدرش سخت شرمنده شده بود با شرمندهی گفت پدر پدر جان من به مال تو ضرر زدم برای جبران این ضرر بهتر منو به بازار برد فروشان ببهی و بفروشی. پیرمرد با ناراحتی گفت نه پسرم نه این حرف رو نزن من نمیتونم تو رو که تنها فرزندم هستی بفروشم نه نه نمیتونم پسر گفت خواهش میکنم بتر خواهش میکنم اینجوری وجدان من هم راحتتره. و خلاصه اونقدر گفت و اصرار کرد تا پیرمرد به ناچار اونو به بازار برد فروشان برد و در عوض صد زکی طلا پسرش رو به تاجری ثروتمند فروه مرد تاجر عزیز رو که همون پسر افثانه ما باشه با خودش به تجارت برد. کاروان مرد تاجر بعد از ساعتها گذر از راه های زیاد در دل صحرا به چاه آب امینگی رسید مرد تاجر تنابی به کمر پسر بست و اونو به داخل چاه فرستاد پسر وقتی به ته چاه رسید یهو نگاهش به انبوهی از طلا و جواهرات افتاد و با خوشحالی فریاد زد تاجر، تاجر تاجر اینجا پر از طلا و جواهره مرد تاجر تا این حرف رو شنید با دست گفت زود باش زود باش زود باش بده بالا! پسر هم همه جواهرات رو به تناب بست. مرد تاجر وقتی اون همه جواهر رو دید از هول دست باچه شد فورا اونا رو بار و کرد و راه افتاد و پسر رو داخل چاه تنها رها کرد و رفت پسر که داخل چاه تنها مونده بود از ترس به هر طرف نگاه کرد تا راه نجاتی پیدا کنه یه دفعه نگاهش به دریچه افتاد با سرعت خودش رو به دریچه رسوند و از اون به سختی و با زحمت گذشت و چند لحظه بعد بودش رو داخل اتاق بسیار بزرگی که پر از طلا و جواهر بود دید اما, اما در میون جواهرات دیو بزرگی خوابیده بود در کنار دیو هم دوتاری روی زمین افتاده بود پسر دوتار رو برداشت و شروع به نواختن کرد با شنیدن صدای دلنشین دوتار دیو از خواب بلند شد نقره بلندی سرداد و گفت آی آدمی زاد تو چجوری تونستی به اینجا پاوزاری ها پسر با ترس و لرز جواب داد اونا, اونا منو به چاه اندختن و خودشون رفتن من من اصلا قصد داشتم مزاحم خواب شما بشم جناب دیو دیف گفت <تصفيق> تو چقدر زیبا دوتار میزنی پسر منم منم تو خوب و ماهرانه دوتار میزد ولی الان دیگه به بعد ادامه نداد و شروع کرد به آه و, زاری و گریه کردن پسر گفت جناب دیف جناب دیف چرا گریه میکنیم دیو با بغز جواب داد تو دیدم یاخت پسرم افتادم هم برام بزن صدای سازت خیلی آ اگه برام تا دو صبح دو تار بزنی میرم و همه افراد کاروانی رو که تو رو به چاه انداختن میکشم میخوای این کار رو انجام بدم پسر به تندی جواب داد نه نه نه نه نه نه. اونا رو نکش فقط فقط منو به اونها برسون خلاصه پسر تا صبح برای دیو دوتار زد و دیو به یاد پسرش گریه کرد و بعد هم پسر رو به پشت سوار کرد و به کاروان مرد تاجر رسوند مرد تاجر با دیدن پسر با خودش گفت این دیگه چجاری اومد اینجا خدای من باید هر چه زودتر شرمش شم بعد پسر رو صدا زد و گفت آه چه خوب شد که اومدی بیا بیا این نامه رو بگیر و اونو به پسرم برسون پسر نامه رو گرفت و به طرف خونه مرد تاجر برای بفتند پسر چند ساعتی که راه رفت خسته و گرسنه در سایه یه درخت هست. تا کمی استراحت کنه یه دفعه به ذهنش رسید که نامه رو باز کنه و بخونه با خودش گفت آه من که سواد خوندن دارم بذار ببینم تاجر برای پسرش چی نوشته بذار نامه رو باز کنم وقتی نامه رو باز کردید که توی اون نوشته شده پسرم به محض رسیدن نامرسون اونو بکش و جسدش رو توی چاله ای دفت کن. پسر فورا نوشته رو پاک کرد و اینطور نوشت پسرم به محض رسیدن نامرسون به خوبی از اون پذیرایی کن و هرچه خواست براش فراهم کن. پسر نامر رو نوشت و به راه افتاد. وقتی به خونه مرد تاجر رسید نامر رو به دست پسر مرد تاجر داد. پسر تاجر هم نامر خوند و حسابی از پسر افسانه ما پذیرایی کرد ساعتی که گذشت پسر از پسر تاجر در مورد شهرشون پرسید پسر مرد تاجر گفت حاکم شهر ما دختر جوونیه که در بازی شطرنج خیلی ماهره میگن هر کس بتونه در بازی شطرنج، اونو شکست بده با اون ازدواج میکنه ولی اگه شکست بخوره اونو به زندان میندازه و بعد هم به دار میکشه پسر که به بازی خودش در شطرنج اطمینان داشت گفت «من میخوام با این دختر مسابقه شطرنج بدم پسر تاجر گفت: «این کار خیلی خطرناکه تا حالا خیلی آمدن و سرشون رو بباد دادن کسی حریف این دختر نمیشه پسر به حرفهای پسر تاجر توجه نکرد و روز بعد به طرف قصر دختر جوون برافتم پسر وقتی وارد قصد شد به نگهبان ها گفت که برای مسابقه شطرنج اومده وقتی خبر به گوش دختر شطرنج باز رسید فورا دستور داد تا پسر رو به نزدش بیارن و به سوت شطرنج رو آماده کنه دختر جوان نگاهی به پسر انداخت و گفت تو مطمئنی که میخوایی با من مسابقه شطرنج بدی پسر به تندی جواب داد بله بله البته دختر لبخندی زد و گفت <تصفيق> حتما شنیدی که در بازی شطرنج استادم و تا حالا کسی حریفم نشده. پسر باز هم بتون دی جواب داد بله بله، البته دختر پوسخندی خندی زد و مسابقه شطرنج رو شروع کرده گفت <تصفيق> شرط من اینه که یک بار با تو بازی می کنم. اگه از پنج بازی؟ چهار تاش رو تو بردی با تو ازدواج میکنم ولی اگه من برندی شدم تو بی برو برگرد کشته میشی پسر قبول کرد در بازی اول پسر شکست خورد دختر گفت اگه از جونت میترسی ادامه نده پسر گفت نه نه ادامه میدم و اونا دوباره شروع به بازی کردند این بار پسر برنده شد پسر که نقط ضعف دختر رو در بازی پیدا کرده بود در سه بازی دیگم به آسونی برنده شد بعد با دختر ازدواج کرد و حاکم اون سرزمین شد و پدرش رو هم به نزد خودش آورد پسر افثانی ما سالهای سال با عدل و انصاف بر اون سرزمین اوکرانی کرد افسانی سد سکه طلا را از مردمان سرزمین ترکمن صحرا براتون برد. کردم که برگرفت از کتاب چهل دروغ بود به گردآوری و بازمیسی عبدالصالح پاک. امیدواریم افسانه ها و قصه های زیبا و شنیدنی که در سینه و گنجینه بسیاری از پدر ها و مادربزرگها ها است به تدریج مدون بشه چرا که پاسداشت و حفظ و ضبط افسانه ها و قصه های آمیان امری ضروریه و برای تمام پژوهشگران عرصه ادبیات شفاهی ما آرزوی موفقیت میکنیم ازار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صدابردار فاطمه جلالی و تای کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود